قتهیه مینم خواه الله رحمتی که رحمت شد که در اینجا بحث تگیزه اجمالی بود و بحث به ایج که مح موصاط فرموندن حساب قاعده، منجز و اصول که حالا اصول تاریخی یا مطلقا در حسب جاری نمیشه این بر حسب قاعده بر همان بر حسب نصوص معنی شیخ صدقه اگر به حسب قاعده مثلا علت تام نباشه نصوصی که در بابه اصول عملیه هست شامل اطراف علمش مالی نمیشه مراجع این بحث صحبتی شد اشکالات من مناقضه تدرسه ای بستان خلاصه ای بحث من میشه که حال اشکال هم مرحوم استاد من بحث گلن. ما یه توضیحات رو تاورد داشت به این اصول و خصوصیات اونها از کردیم حالا اون نفیجه جنبندی نهایی ترس کردیم اونی که ممکن از اشکال بشه راجع به جریان اصول در حسابه این یه دفعی کلمه شیعه که دیروز از شد بگیم شیل باید معلوم به تفصیل باشه معلوم به اجمال کافی نیست حالا خلال بحث آینده روشن میشه این جواب باشم همینطور باید مشهر کنم در که در اینجا این اهده همان محروز نجاست نیست اهده همان محروض موضوع خوف نیست این اهده همان فقط یه عنوان است برای اشاره و ما میتونیم یه خون اطلاع با یکی خارجی مناقض کرد من با این نقطهی ای هم گوی که در حواله بحث فرقیز علم اجمالی ما اعرض کردن که بین این اجمالی با عنوان احد و ما فرقه بین این اجمالی با واجب تقریبی فرقه بین بحث علم اجمالی با مسئله تقریبی فرقه اینا یکی نیستن در واقع علم در حقیق شما عنوان احد و ما رو برای تدبیرشون بکنه در واقع با این اینهاد خارجی ملاحظی حالا این یک بحث که میشه به بردم روچندتن میشه بحث دوم ما از خرده که اصولا اصول حکام ظاهری یا چه در مطرح تنجیز تنجیز خوب منون انتقاش صورتی که ما در ذهن این که به یا تنجیز عبارت از این اون بحثی در علم اجمالی هست آیا این است که این علم اجمالی برای تنجز کافی است یا کافی نیست اون بحث اساسی و لبیه اینه راجب این مثلا یه مقداری صحبت بشه که روشن بشه مطلب که این حدیقت اصلا نفرند تحت علم اجمالی بحث تنجز رو کلا روشن میکنه و معلوم میکنه که اشکال در علم اجمالی در چه روشنی خب یه اصطلاحی هست در هم خودش که مثلا یعنی انسان در مرتبه احساس نفس مشترک رو بر هوشیاری و بر هوشیاری رحم و صورت و نماد رو جلو میکنه ما به جای اون اصطلاح یه اصطلاح دیگه شبیه اون به کار میبریم که یک مقدار مطلب روشن بشه اصلا شبهه یا داشت واضح موضوعی چه شبهات حالا من اصطلاعا در شباه که موضوعی صحبت می کنم طبقا می تصورت شما با تو حکومی هم روشن می ببینید شما پر مثلا یک مایه خارجی دارید این مایه خارجی رو به اصطلاح می که خمر حرام است داره جسد امبان بساطه است ما بسید یک اینجا بگذاریم اون این که این عنوان مایه خارجی رو مثلا به این سورت یه شعیتشه یعنی صورتشان ماده شه ماده ای او رو هم عبارت از خمریت یا نجاستر یا حرمت ستونه پس این اصطلاح هم برای اینکه این مطلب روشن بشه یک ماده و یک صورت رو ما در اون انتقاش صورتی که در ذهن داریم به کار رو اگر این اصطلاح رو برای توضیح مطلب و تقریب مطلب به کار رو برم. چهلد اصطلاح صورت و ماده است که در فلسفه اینجوریه، صرف بحثه اونجوری که ما معمولا حساب این صورت و ماده رو دقیق این طبیعت هر حالت پیدا می‌کنه این صورت طرقتن هم صورت و هم ماده کاملا به نحوه احساس مستغی ما از خارج در ذهن ما وجود داره پس که می دونیم مایه،, مایه خارجی می دونیم خمره می هم نجاستش واضحه هم خمر بودنش واضحه این یک صوره یک صورت دیگه اینه که اون صورت خمریتش واضح بشه اما مثلا پس اون مایه خارجی مثلا اون حالت عنوان خمریتش عنوان مایه خارجی معینش معلوم باشه اما عنوان خمریتش یا مسریتش اون مشروب بشه مثلا خمری بوده روش ماده، ریفتیم قرص انداختیم یا مادهی جیمعایی با این ماده از بودن خارج شده یا نشده در از کنه این همون مایه است. قبلن خمر بوده موسکر بوده حرام بوده الان همون مانیه خارجیست عرض نشده این این کلام نمیدونیم که آیا مثلا موسکریت شخصه به رس میکنیم این ای که در شیخی موسکریت شخصه یا حال که اسکالی نداره نمیدونیم آیا اون حب اون خمریت یکی عنوان خمریت یکی موجود اجتناف قرمت شب آیا او رفته یا نرفته در اینجا ما اصطلاحاً این رو میگیم صورت محفوظه ماده مشکوکه یعنی این صورت که همون مایه است محفوظه ماده بود او که آیا عنوان و حرمت و نجاست بود خمریت بود آیا برداشته شده یا برداشته نشده خوب تا من شرعش اصلا توسعه در مفهوم خمر و ایجاد جهات یه منشه اشتایی داره این یک صورت دوم مسئله است. صورت ثوم مسئله که ما به عکس این صورت اون ماده رو میدونیم دقیق میکنیم صورت رو درسته میدونیم به عکس این صورت مثلا مقابل ماده و مایه هست مایه بودن رو میدونیم میدونیم یکیش هم خمده و طبیعت هست یکی, شب، یکی هم یکی بود اشتنابه هست اون ما در اینجا اون ماده که خمریت و به اشتناب رو میدونیم اما اینکه این مایه خمره این رو نمیدونیم این اصطلاح هم میدونیم که ماده رو میدونیم سورت رو نمیدونیم یکی هم باید هیچ کده نمیدونیم مثلا یک به اصطلاح کنیر خارجی هست یک شیء خارجی هست نمیدونیم اصلا خمر هست یا خمر نیست یعنی این چیه به خارجی معیم نمازش مشخصه نه صورت نه هم حالت صابقه داره ابتدا هم پس این چهام صورت تصویر میشه اون تصویری که میشه در تو قبیمی هم همینطور مثلا خانومی که در ایام حیق هست خب این قطعا یه رون وقتی ها آثار در میشه خانمی که ایامه هیدش اون کار شده قرص نکرده خوب درده دا. این همون خانم فرقی نگرده صورت محفوظه مادهش محله اشکاله چون ماده این بود تحت و نصافه محیض این نصافه چه این محیض بودنش اشکال پیدا کرده مثلا هم همه که چرا استصال جده میشه چونگه اگه من خون نمیدوند که محیض نیست نه مثلا ممجنه این محیض حالت ده. این احتمال خیلی رویه که هیچ حالت مثل بول نیست بول تا وقتی نیاد نگسته بول که ایستا دیگه ما حالت بول نداریم مثلا اگر کسی بول کرد وضو گره ناس رو پنج رو برد رو برد بول هم درسته بگیم نه که کم بوده این وسط هم بول. ما حالت نداریم اما در هنگ حالت داریم چون اگر خانه بگید چه 5 ساعت شار ساعتا رو باید خون یعنی حیز داره مگار دم نیست حیز حالت بقید کرده. پس ممکن است یک ترتظرون نصاعف المحیز یعنی حالت این حالت هم با خوز از بین میره با منجرده پاک خون از بین میره ببین پس شما یک زنی هست این خون هیز میدید این صورت این حار بود احکام و سازش به این حال سر ق و ورش حالا همون خاان اول نشده همون در م کل ها فقط خونههای پاک شده آیا اون صورت سابق کافی ملیز بودن روشن میید؟ اگر هیچ خود خو باجهخون نداره، اگر غیب حالت باشه حالت داره احتمال داره یا به عبارت این حکره اون وجود حکر، اون وجوب اجتناب قطعاً بعد از غصر برگفته میشه قطعاً در حال دن میمونه این حالت وستانیش محلی اشکال میشه پس اون صورت محفوظ ماده مشکلی گاهی اوقات به حقیقت ماده محفوظ صورت مشکلی مثلا مرد نیز رو تا خانم بره هر داشت هم الان به هر تا ظاهر خون نمی بینن اما یکیش قطعا در حال حیز بود این طبعه متقلل در یکیش هم قطعا در حال حیز نبود فسی این ماده هست این مجوب اجتناب از خائز هست اما این چی این مجوب اجتناب به این صورت این خانم یا اون خانم ببینید؟ یک صورت در از اون ترخیل صورت بود ماده مشکوک یه شن تا که ماده اش صورت مشکوکه یه دیگه هم که اصلا هم صورتش مشکوکه ماده است ولی یه جایی که زن زاین مشکوک تن باشه مثلا 55 دلی خون دیگانه که اصلا ما این خونه ای هر یا خونه ای این زن علوی است یا زن علوی نیست و خونی هم دیگه آلا گاهی اصولاً نش یا مثال‌های بالزی یا خود سیگار مثل ما میزیم یا مثلا ا باب میث ما میدونیم که هر تو اسخار داره حرام مایری که به عنوان خند و مسله حرا و نجسه وکه مفهوم اسکار واضح نیست الان مثلا این الان ماده ای که هئینه ما نمییم ماده مسری که حالا خ بودیم خوش باشه مایه نباشه مایه ابل نباشه و یک نوع تفریحی هم ایجاد بکنه نه عنوان خمر برش مشکوکه چون خوشیه خمر میگم باید ماهیت باشه اینطور گفتن نه عنوان مسکر بودن واضح که هم ماده افطلاح هم مشکوکه هم در حیقت صورت مشکوکه هر دو مشکوکه که این همون مجرح معروف برایت محله کلاکلا دیناه ما اگر یک تصویر اینجوری در باقی اعتبارات قانونی بکنیم بگیم ما هم صورت میخواییم هم ماده پس گاهی ما احراز صورت و ماده میکنیم که میگیم این خمر است و موسیقه و موسیقه, و موسیقه. این ماهی خارجی یا این خانونی چه خونه هید هی میگیم اینجور برسی است گاهی احراض سورت میکنیم ماده مشکوکه مثلا افتا این خانون هید هی میگی، همه خانون الان اون مشکوکه که هایل پسیل مهید هست یا نهد گالی اوقات نه ماده محرس صورت مشکوکه مثل اینکه یکی از این دو خانم بایین که الان خود نمیدین اما یکیش قطعا در حال حیده یکیش هم اما صورت که اینه یا اونه مثلا مثلا هندست و اصماء مثلا یا فاطمه بود که این هم مثلا صورت مشکوکه این صورت ماده بین اصطلاح نبود اصطلاح بر گایی همو هرگام اشکن هم. اون در بحث تنجیب اینه بیاری. در کدوم صورت تنجیب هست در کدون صورت تنجیبی میگه خب رفتر این خیلی مثال واضح این تنجیب هم در دو بحث بیادی شباهات, شباهات, شباهات حکمیه و شباهات موضوعیه حکمیه و شباهات موضوعی در که به صورت می شدید حالا توبیه چیه؟ روشن شورت که همه ما این چهار حالت رو داریم خلاصه مدعا اینه خلاصه مدعا اینه ام. که در صورت اول و دوم و سوم معروف و مشغول اینه تأثیر گذاره در شبهات موضوعی مطلبه در صورت چارم هم بنابرای مخصول که برای عجال میشه در شما ها توضیح داده میشه در صورت اول که ماده و صورت احراض شده اونجا منجزه در صورت دوم هم بحث استثابه استثاب در شبه هزمه. که از که از زمان صحابه مطرح شد از شد که از از خدا اهل احراض زمان اولش اختلاف دارن بزرگانشون اختلاف دارن به شافعی میگه میشه ابو هنفی میگه میشه ایکی از همون اوائل اختلاف دارن علمان ما هم مثل سید و خیلی صافید ادهشون قائل بودن دیشون قائل نبودن تا زمان اخباری ها اخباری ها به شده پاکیش ایش نمیشه یکی از معالن اساسی مکتب اخباری این, این مکتب اخباری چند دفعه چند تا نکته اساسی داره یکی از نقطه اساسیش احساسی در شواهد رو کنیش را نمیشه بعد از اخباری هایی مرحوم وحید بربانی و من، ها من اقلال به اون ها به این که جاری میشه مثل مرحوم شیخ هنسالی مرحوم اینا خالبا جاری, جاری میشه خالبا آقای خوبی قایش رو از اخباری ها به اخبار بعد به مرحوم نراقی هم همینطور آزا یا مطلقه در بردست مرحوم هم تا مرموهای های هم ها در شکل در مختزی نباشه شکل در رافع مانع رافع باشی به این در شکل در مختزی در شوات حکومی این دقت کردیم یعنی به عبارت از این افرا این یعنی همین که صورت آمد ما نباید منتظر باشیم حتما ماده باش باشه این در اعتبارات یعنی در نظر ارفیه هست است هست که داره مثلا شما در یه جلسه اول از یک خوش شاید که ده سالم بعد می کاره ب این بازارشون جلسه اول خوش رو میمونه که انسان میکنهیه حالت روانی در انسان کرد که مسلندمه کشیدنش جو اعتبارط قانون کلان ب وجود این حالت روانی در انسان جای بحثی کسی در اصل این حالت روانی شبه نداره اصل حالت روانی ثابت. پس بر این دقخ نصه فی شما یک حالتی از صورتی از داره خانون خون میبینه الان خون نمیبینه احتمال این همون حکم باشه چرا؟ سر احتمال باید من یه نفیه احتساب و سابرن توضیح دارن یه نفیه شوزی میدن چون نفات مختلفی دارن سر احتمال این است که ممکن است هیت خون نباشه فعتزلون نساط المهی محیض خون نباشه مهیت حالت باشه داره مداره وجود خون نیست مثل صوره متخلی نوار متخلی این حیث حساب میشه با این خون وجود نداره پس دیگه این فعتزل و نساعث باز شامل این خانم میشه همین خانم حکم اجتناب داشت فعتزلو داشت دیگه همین خانم که حکم فعتزلو داشت مادام یقین یعنی نداری حکم برداشته شده باهیه این حساب شده حکمیه. که از سر اون اخواری ها به شدت مخالف من او هم قالبم بعد از من اون ذهنی دیده بایدن به جرم نسوس ها در شبهات و حکمی این دو تا شور سر روان فرقش در شبهات و حکمیه در اصطلاق اینه به اصطلاق بنده از کرد ماده وجود داره اما هیئت یعنی صورت وجود نداره چطور؟ مثلا ما میدونیم یکی از این دو خانم حیده یعنی ما میدونیم قطعا فر تشخیص نمیدیم ما میدونیم این از این دو حکم هست یا نماز شبه یا نماز زب تشخیص پس ماده هست به اصطلاح ما هیئتش صورتش مشکل که این حیعتش میدونم موجوب احتیاط اصطلاح بودیم موجوب احتیاط صورت شما رو هر دو مشکل مثل سیگاه هم ماستش مشکل که مثل هروری اصلا مشروع که این مثلا خن رحلس یا نه مشروع این مثلا مشکل رحلس یا ماده مادتاً و صورتن مشروع این همون بحث محلوظ آیا یا برایت جانی میشه یا افتیات داره یا, یا حالا این بحث برایت به نظر ما کل این ارحاظ به این چاکست با این ترتیبی که من ارز کردم مشخص میشه و مشخصم میشه که الان بحث ما در علم ایجمالی در صورت ثومه و اما نتیجه برد به وقت ما به جای این اصطلاح تعالی که این اصطلاح رو می بردیم اصطلاح ادگاه بکنه می بردیم در مقابل انخواه یعنی, یعنی شما حضور این خانم در ایام حیضش هست شما حالت انخواهدی داریم یعنی شما انخواهدی یعنی این دویم فرقهدل و نصافر این خانم در حیضه خون داره می بینه قطعایی جای جایی بحث نداره اما اگر شما می این خانم صاغرن در محیز بود الان پاک شده قصر نکرده شما باید یه چیزی اضافه کنید یه اصلا این اداره افداعی این افداع مالی اون رو گفتیمی که بود مال اون مازمت صورت بود خانومی که خون می دینه شما می خواهی اون حکم رو دیاره رو خانومی که خون نداره این که ما گفتیم افداعی مرادی اینه این قسمتش رو می‌کنید. یعنی شما نخیل اونو حکم رو که برای خانمی که خون میدید بیاریم برای خانم این خون نمیدید یا مثال معروبه دیگر آمی بوده بیش از کل پرست مثال به خون سهرمت شده متقیل شده یه روز دوزمون این رنگ خون رفت آب صاف شد آیا پاک یا این آب پاک رنگ خون رفت مثل غال نفسه دواز روشید خب اونی که میگه استثاب در جواد و هفه میگه پاس نگسته چرا؟ چون این مایه صابه رنگ خب شبه میاد این مایه که نگسته رنگ خون داشتون که رنگ خون نداره این قسمت شما ادگاه میگونه میگین نه این هف خب رفت رو مایه مادام شما یقینه به خلاف نداری این هف همچه این مایه میمونه اون ماده رو نمیخواد، رنگ خونه نمیخواد. این مایه میگه نجس نبود این مایه الان هست رنگ خون نبرون نداشتون رنگ خون این مایه که خود بیروش آمد فکر میکنید این حک میمانه تا یقین به خلاف تا یقین به خلاف نشده این نجاست برای این مایه میمونه ولو ماده رسته یعنی ولو رنگ خون رسته پس کسانی که غالب استثابت اینشاده رو از اون راشوش ما ازش تحریک ادراک ادرایی ادراک این قسمت چون اون مقداری که امکالی بود مایه قرمز رنگ بخون اون مایه قرمز رنگ الان نیست مایه بیرنگه قرمزی نداره بگیم درست قرمزی نداره چون یقین نداری نجاست برداشته نشده همون سوکم نجاست هست این رسال در از زمان مشهور به این علمای ما مثل مردم شیر و صاحب‌های او، مردم ناین استون انتخابی در مردم صاحب مردم آسیا و دیگران، مردم شما مادی می‌زنند و گوش دیگران اینا هستند که استفاده در سبک می‌یه جاری میشه. هستم ها به شدت مخالفن. مردم اصلاً اخویا جاری نیست. از یک معنای بفکرند اخباری. اخباری ها تا ما هم, هم که جاری نیم. لنگ حالا تفاصیلش در محل خودش این راجب شما در که واسه موضوع این دو تا عکسی شده مثلا این کتاب صباغاً که زید بود حالا میلیم امر داره شک میتونید تصراهمش واضح نیست یا خونه یکی دیگه دیدی استفهام ما نه اینم این مرحله دوم به بحث ما الان صورت سومه در محل بحث ما اون ماده احراز شده صورت مخاطبی در رو ماده شده خب دیگه بنابراین بگی موضوع وارد اون ذاته قضیه اینه بگی نگیم موضوعی گفتیم موضوع آب با رنگ قرمز برای جو استصحاب موضوع عوض شده یعنی بگیم ما از لسانه از الله نفهمیدیم موضوع ذات آبه یا آب بارنگه و با مایه بشه بشه و نه مایه به تو رو کنیم مایه متغیره به نجاست اگر ذات تغییر این عنوان ها کار به خارجی ندارم مایه ای بوده فرص توش مقدار است یا خوندی خشده یا نجاست دیگری تغییر پیدا شد شد قرمس شد دو روزون قرمسی حالا آبش هم کمتر از کور نباشی که کوری بیاد نه آبش ده تا کور باشه. بسن حوض بزرگیه رنگش گرمش به خونه نگست و نه خونه پاک خونه متخلی نه خونه نگست خونه که از گلوی بود سر نازی یه چوترانه برستر این قسمت میشه که این بعد از زواله تر چون شما میشه که الان این پاک شده بگیم استثبات میکنیم و اصل این هم در کجا ماده هم در موضوعات خارجی رژی مثل مثال یکی از این دو تا اینا قطعا همره اما تشخیص نمیدن یا این یا او، پس ماده هست ولی ازا این سر فرق و از شما خوب دقیقه کنید یک بحث اینه که اگر ما تنجیز رو باید شدید صرف تنجیز چیه خوب به ناید اگر شما می‌دانید یکی از این دو قانون های اما هر دو الان خون نمی‌بینم، اما یکیش نوارمو متخلله مثلا الان خون نمی‌بینم، اما این که مثلا دو صد کلم می‌زد، پنج صد میبینه این هر دو الان خون نمی‌بینم، اما قطعاً یکیشون های زن. لیش واقعی اما هر دو خون می‌بینم. اینجا میگه شما علم جملی منعده و جوابش سوال، این علم اگمالی که تنجیز میاره چی کار میکنه یعنی اون ابدالی که شما مخیلی بکنید چیه اون ابدال میگه حاضر المرقه حاضر المرقه حاضر, حاضر. ابدال شما اینه یا میگه حاضر المرقه یا جیبا اجتنابه ها حاضر المرقه ها به قطعه این اون صرف مواحظیست که ما در حصول لطافتشی به کار بازید چون این قبیل روزاره من نمیشتن ما از کردیم اگر ادعای شما در صورت شد اصل محبظه اگر ادعای شما تو ماده شد اصل محبظه شما در استثاب میگید این زن سابقا مثلا خانمی که یه جبایت اشتنابا یه رما وقتی ها الان هم اگر استثاب میگید این خانوم یه این خانم اصابه. این تصور در ناهی صورت اما اگر تصور در ناهی ماده شد این دو دوتا خانم یکی شاهزه شما این میگیم حاضری حاضری حاضری حاض بگرد بکنید. شما مخید بیانی بیان بیان بیان این یکی و پرکل ور اینم یکی این یهروم و بسیگاه اینم یه این یهروم تو که نیدونی یکی از این دوتا الان حاضن تشخیص نمی تونید دید. از هر دو مادرش اشتناق بکنید یه دفعه وجوب اشتناقه یه دفعه اثبات انها حائزونه این نکته فنی روشه شد ما این توضیح داده بودیم اون البته اون اگه برطرف گفتم کردیم این توضیح داده بودیم اگر خطر رو شما ادوار شما در ناحیه موضوع شد میشه اکثر موارد ادوار شما در ناحیه ماده شد میشه غیر محرز پس شما در اصل غیر موقع صورت شخص کنی در احتیاط نمیدین حاضری ها اتحادی حال؟ شما میگین حاضری یکمان وقتی ها، حاضری هم یا ها؟ چرا؟ چون اون مقدار انفعالی شما چی بود؟ یکی از این دوتا حاضره، این انفعالی شما این مقدار بود؟ درسته؟ شما مقید چی افضاع بود؟ افضاع تو؟ این به عنوانه ها این به نفس این که اسمش پرانه این یه موقعی ها این یکی هم یه ها پس این مقدار ازدار شما در نایه صورت چون سورت واضحه لکه این علم شما به ماده صورت درست نمیکنه اون دفعه فنی اینجاز نمی آز به شما بگه حاضر ها از ها پس سؤال اساسی به نظر ما اساسا در این است ما در این دو صورت ادعا میکنیم یکی ادعا ماده میکنیم یکی ادعا صورت آیا اعتماد بر ادراکات ادعایی در شریعت و در قانون درسته یا نه؟ سوال آیا با ادراکات ادعایی تنجز پیدا میشه؟ خلاصه جواب به نظر ما ادراکات ادعایی در ناهی موضوع مشکل نداره چه می خواهد به نهر استسحاب باشه چه به احتیاس باشه هیچ مشکل نداره اما در ناهی خانو در ناهی کلی شوهه حکمی خوب دقت رو کنی اگر هدف از اون ادراک ابدعای عنوان یک حکم به این میدید مثلا بگیم حرام و واجب و, و، انصافاً با ادراکات های شما شوهات نمیشه اصباد کرد نظام به نظر ما و ما از کلی که دارم به نظر ما مواردی که از ادراکات قضایان هست در شواز حکمی سه یکی اساس عالی فهارته در شواز حکمی این انصافاً ثابته یعنی دنای فقهای ما الان که قاعده فهارت در شواز حکمی جاری میشه. لاک اگر کسی مله نقصی شود ذریرش یک روایت واحد است، من روایت انوار نموسای ثوابتی. هیچ نداریم. تعبیرش هم کل و شیء نه تاهر. حتی تعلمه هم نهو خبرون است که کسی بیدیم مناقش با جواد و وضعیت با حکمه نیو ممکنه الان بناه بقای ما صحیح هم همینه بناه بقای ما در شبهات و حکمه از جاری را جانی این هست این بناه هست وکن مناقشی امکان و در دلیل هم هست به این مناقش ها دیگه هستم دو بول که آن اماره غیرمحتور را گرسن به نظر ما اضع سوم اثبات در شواب صحبت ما چه نه می در شواب صحبت غیر از نیستا شما بخویم با اصل اثباتش رو گفتم اصلا مثلا بیاستون اون عماره گرفتن به نظر ما اصل مؤدل این سه موردی هست که ما میگیم با ادعا مثلا شارب و شراب حرام و شراب اصل این خبر مشواهد غیر قران و غیر قران اصل خبر یعنی شراب انگوری شما این حکم از شراب انگوری میخواید از این به شرابی که از چوب میگیرن مثلا فرض یا از نشاط نگیرند نمودار نسل مخملگر شراب و انگوری خب یه یعنی نهبه بیاید دیگه این به نظر ما یه نهبه یعنی شما صورت شراب انگوری رو با اون حکم به به شراب و انگوری همون صورت رو گیر می‌کنیم. به به نظر ما در شواهد تو حکمیه یعنی نه فقط در شرایط مقدسه اصول و اقلامی ما اعذار می‌کنیم. هیچ وقت قانون رو با اعذار نفس می‌شویی، درست؟ ایمان و علیه مستان تحکیل فرموندن این نفس سنت الاغیتت موجه قدید اگر تو قیاس به کار بردی این ذهن چود نه خود مهلادی قانون رو باید از با قام مغنم بیرد قانون رو با فکر دیگر درست بگویی من حتیب قوارد می گفتم در اینجا قانون یه این شرک بودی از قوارد قوارد چه چه این باید رو ایسال بپنیم بپردی قانون داریم من بکرد چید لذا به نظر ما در شباهات و حکمیه به استثناء احساسی سهاره ادراکات ابدائی جا نداره. اگر مراد خود حکمه. اما اگر مراد نیبه عنوان عام عنوان مشتبه، اون اشکال مداره. نمیخواد حکم اثبات بکنی. میگه من نمیدونم یا این حرام بود یا اون حرام. یکی از این دو تا حرام بود. خب میگن اشتباه بکن. نه عنوانی که این حرامه واقعا. بعنوان عنوان اینکه تو می‌دونی حرامی در عین هست اشراق بکنه این رو به خاطر درس و باز رو من نمی‌ذارم یا نماز واج نماز ظهر و نماز جمعه خب می‌گم حث بده بخون بعد از مراجعه نه اینکه احتیازی چون احتمالا احتیاط احتیاط معلوم سا درست درستش واقعا ممکن درست زمان خالی اشتباهی نیست من به مراجعه عذله کردم روشن نشد برای من جمعه نماز جمعه. خوب خب هر بکنه. اینجا بکنیم اینجا نماز جمعه به عنوان ها واجبه یه نماز رو جمعه واجب کرده این سنخه ادراکات ادراکی برای اثبات افکار به نظر ما مشکل نده چون حکم رو اثبات دمی کنه عنوانه آم رو اثبات میکنه پس بنابراین حق در مقامیه بگه این بحثی که آیت حال جمعه مفرس کردی حق در مقام در مسئله تنجیز علم جمعی اینه چه آیا ادراکات ابدایی مثل ادراکات انفعالی میتوانند منجز باشند یا خیر. یا به این تبدیلی که ما عرض کردیم جایی که صورت و ماده هر دو احراز شدن قطعاً تنجد هست جایی که صورت احراز بشه ماده احراز نشه که اصطلاحاً استفاده بشون جایی که ماده احراز بشه صورت احراز نشه این معنی خاص خود اونها این اصطلاح خاص آیا در این دوتا هم تن از هست یا نیست جواب در صباحات موضوعیه در هرگاه هست در صباحات موضوعیه در اولی که استثاب باشه نیست در دومی هم این مجموعه سوال. و به لغت دیگری که دیگه وقت آمون شد فرداشتون میخوابیم اون داره عبارات مقصد از, از نورست در اشکالاتیشون رو مطرح و تطبیق بدیم که این جواب وارد میشه یا نه به عبارتی دیگری آیا اجداث اجراسات ازرا... اجباری ما میتونه تنفیذ بیاره نه جواب در شوابات موضوعی بله اصلاً اصولاً دایره شوابات موضوعی اوسع از دایره شوابات حقوق میاد چون اصولاً قوانین در موضوعات دخالت نمی اصولاً اینطوره اصولاً قوانین در موضوعات دخالت نمی کنن. و در خبات رفتی همی اشتاری که